گاهی گرهی که در کار ما میافتد این گره ناشی از عمل سوء خود ماست که گاهی به اون توجه نداریم. یک آرفیست اسمشو شاید خیلی از عزیزان شنیده باشن شیخ رجب علی خیات که معروف است به خیات بلو یک انسان معمومبی و یک انسان آرف است در رابطه با این انسان مرزند ایشون نقل میکند که من در محضر پدرم بودم کسی اومد و به پدرم شک کرد یهلایه کرد از اینکه مشکل در زندگی من به وجود آمده دلیل این مشکل چیه؟ ایشون سریع پایین انداختن بعد از کمی تحمل فرموم خواهر تو از نااریست و دلیل بروز این مشکلی این است که خواهرت نااریست باید خواهرت رو راضی کنیم ایشون بعد از قدری فکر گفت بله در زمانی که ما ارث رو میخواستیم تقسیم کنیم یه مبلغ 2015 صد تومان من به ایشان کمتر دادم یعنی به تعبیری سرش رو کلاه گذاشته ناشی از عمل سوء خود ماست که گاهی به اون توجه نداری شیخ رجب علی فرمود اگر میخوای مشکلت رفت بشه گره از کارت برطرف بشه باید خواهرت رو راضی کنی پسر شیخ میگه بعد از چند روز ایشون برگشت و گفت آج آقا من به جای 1500 تومان 5000 تومن به ایشون دادم ولی همون مشکل برطرف نشده باشق یه نگاهی و یه تعملی فرمودن ولی هنوز خواهر ازه رازی نشده چند واحد و آپارتمان داری بلا استفاده است خوهرتو مستعجره از این خانه به اون خانه وقتی وقتی در خانواده خود انسان، نزدیکان خود انسان مشکل دارن، صورت دین این است که ابتدا باید به اقوام خودمون، به خیشان خودمون برسیم. چه بسا که در اقوام ما، در نزدیکان ما کسی باشد محتاط و ما از او خبر باشیم، گاهی کمکم می‌کنیم، جایی مختلف سرمایه‌گذاری هم می‌کنیم، ولی خبر نداریم در نزدیکی ما، خواهر ما، برادر ما، اقوام ما، نزدیکان ما مشکل دار و توجه نکردن به مشکلات اونها گهی گره در زندگی انسان به وجود میاره گفت لانی خب من چیکار کنم عاشق یه یعنی تأملی کردن فرمودن یکی از این واحدهای بیکاره خودت رو در اختیار خواهرت بگذار زندگی سختی داره اول ناراحت شد که آقا این چه حرفیه من به خاطر 1500 من بخوام یه واحد رو در اختیارشون بگذارم ایشون فرمودن من همینقدر میفهمم بیشتر نمیسمونم پسر عاشق میگه بعد از مدتی ایشون اومد پیش پدر من گفت فلانی رفتم خواهرم رو بردم تو کنه خودم یکی از اون واحدها رو به نامش کردم و الان به همده الله مشکلات مرتفع شده ببینید؟ گاهی این توریست برای خود بنده اتفاق افتاد جوونی از دوستان ما ایشون به من گفت فلانی من با اینکه کارم خوبه و از مالی خوبی هم دارم درآمد خوبی هم دارم ولی دائما گره تو زندگیمه نمیتونم یه وقتی بعد چند روز پدر ایشون به من مراجعه کرد بعد از اینکه حرفش رو زد دم در خونه بهش گفتم فلانی یه سوال دارم گفت بفرمایید گفتم شما از فلان پسرت راضی هستی یا نیستی نفسی کشید گفت جا ایشان تو جوونی من عذیت کرده راست شده خواهی نه گفتم گرع ای که تو زندگی پسرت افتاده ناشی از عدم رضایت توست الان دیگه زمان گذشته قرار نیست ما کینه ها رو داشته باشیم پدر و مادر وقتی پخته میشوند در پدری و در مادری خودشون که گذشت داشته باشن ایثار داشته باشن نادیده بگیرند این بداخلابیه ها و این بدرفتاری ها رو البته به جوون توصیه میکنیم که گاهی این مشکلاتی که تو زندگی به وجود میاد به خاطر اینه چون پدر و مادر رو خدای ناکرده شاید رنجونده باشی ایشون گفت باشه بعد از مدتی همون جوون به من تماس گرفت احوالش رو پرسیدم گفت خیلی خوبه الحمدلله وضع خانوادگیشم خوب شد زندگیشم خوب شد گفتم الحمدلله ببینید گاهی اینها ناشی از خود است اینها از خودمز. اینها ناشی از خود گرهی که در کار ما میافتد این گره ناشی از عمل سوء خود ماست بی گاهی به اون توجه نداریم